اوضو بالله شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و, و, و صلو اللہ علی و سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و, و لعفت دائمت و علی دائمه مجموعی اللهم افرم و جمیت اشتاید اشتاید در بحث روغمی که یا بحث ثبوت در حقیقت که مرگون شیخ فرمانه بحث اول رو خیلی مختصر فرمانه در این مسئله دوازده اول متعرض حکم تکلیفی شدن فرمان الله اشکالی که قشت حرامه بعد متعرض بیان موضوع شدن با که تمساک روایات که آیا قصد شرط هزمی که قصد تلبیس و اینها با علم غاش علم داشته باشه نداشته باشه به الاخره و اقسام قشنان چهاره که میان فرمونده این راجب به بحث موضوعی بود بحث ثبوتی که هم راجب به بحث حکم وضعی بود که آیا معامله مخشوش باطل هست یا نه از من الان خودم تو ذهنم نیست این لحظه که قبل از جامعال مقاصد کسی متعرض شده یا نه ایشون از جامال مقاصد که ایشون در قرن ده هم هم مرکوم دولت مقاصد ایشون اوائل دولت سفریان و معلوم نیست یوری ایشان به چه نقطه چونشون برمیگشتن چون اینشون میادان ایران باان ولی فقیه بودن یه کارهازی نظر ایشان بود توسط رسم کاری که شاه تحماس به صفبی کرده بود میادم باز برشن اراق و حوزه بر میشن. در یک سفری که میاد توی این جایی هست به این نظ و واعون خاان نس یا نس ناسش میگهشون در اونجا خود میخ شهید میشنن معلوم اون نش این کاری کرده که جنازه ایشون اجازه شده. سو فی بجامع مقاصد ذکر فلقش و بی صحت المعامله و تصادق. خود ایشان نکته رو این گفتن، خود مرحوم جامع مقاصد. اما صحت به طور اینکه محرم قشه. عنوان تحریم خورده به قش، به خود معامله نخورده، ولی مبیع اینون مملوکه منقطع بود. و چون تحریم نخورده به خود اون معامله در اینجا موجه به می نمیشه و اما وجه فساد من اندل مقصود به به و لبن ایشون گفته شیر میخورن و این مخلوطه مشروبه. شیر نیست پس فاسده این خلاصه استدلالی که مرمون محقق سانی اجام بکن ایشون یک کلامی را از شهید سانی در باف ذکرا میارن در جایی که میگه که خوشت سر این امام که زهیده نماز می کنن اون امام امره ایشون فرمودن منشأ تردد هم این هست که آیا اشاره مقدمه یا بس مراد از اشاره در اینجا به اصطلاح اون واقع خارجی مهمون چون با اشاره خودش به اون واقع خارجی میزن مراد از عنوان اون صورت ذهنی چون میدونین شما در مسائلی که ما انجام میدیم غیر از واقع خارجی یک ساخت ذهنی هم داریم مثلا میگه من این کتاب مکاسب به شما فرستادم این کتاب وقتی این گفت این لفظ شده در وقت عرب برای اشاره به این خارجی وقتی گفت کتاب مکاسب این ور شده برای عنوانی که ما در ذهن از چه میگید عنوان ذهنی بعضا هم ما به اینطوری این کتاب وسایل فرستام بلکه باز که حساب بفرض جا مقاس در وسایل نیست بگردم اینجوری اسمش تا تعارض اشاره و غص مرادشون از اشاره اشاره به عین خارجی مرادشون به غص اون صورت ذهنی است این صورت ذهنی با اون مشابه خارجی با اون صورت خارجی با اون واقع خارجی با هم دیگه فرق داره در شهید اول این مسئله رو آورده و مرحوم جامال مقاصد این کلام شیده اوله تو ما آورده گفته اینجا هم همینطور وقتا این شیر رو به تو فروختن این مشروبه شیر عنوان ذهنیست اینجا هم تا اشاره بست ظاهر عبارت جامعه قاصل اینه و ظاهرا مرحوم شیخ میخواد اشاره بکنه این درست نیست آوردن اون مسئله در اینجا درست نیست ظاهرا مراد شیخ اینه و این صافن عبارت شیخ در اینجا واضح نیست نمی چرا چه داری؟ جایی پیدا کرده اونی که من ذهنم میاد یک نیم سطری سطری نیم سطری سطری هر داره عبارت اگر نسخه یه پیدا بشه به نظر من یک جایی شیخ هرز فیداره این عبارت منسجب نیست تصالفا میدم مرموم اصطادم مشکال بکنم در مرموم شیخ مثلا اول مرموم شیخ و ما ذکره هون من وجه سیحت و الفساد جا بمکنی مطلقه ای میگه اگه این مطلب باشه بگیم در مطلقه ای دو باشه هست در سیحت و فساد ظاهرن این اشکال نقضی میخواد بکنیم مرموم شیخ لأن المقصود هو صحی ول جاری علیه العهد هو المعی لفتی میگه کتاب مقاسب فروخته مقاسب صحی بعد در این جات خرابه معیده بند و جعل من با به اشاره است مبنی در بر اراده صحیح از عنوان مبین و یکون قول او به اته حالاضاپ در طبیان کی اع بعد از اینکه بر کوره به منزلت قولی به اتکه حالم این ظاهرا شش میخواد اشال بکنه که این مطلبی که تو گفتی با تو خیاره ای قائل شتیم با بگیم معامله و انت خبیرون به ظاهرا مرا از رد اینه اشکال نقضی میکنه و بعد میلن کما سهجی و بفی بابل بی و نمیدیم تا آرز وست و اشاره رو چرا اورد بعد چرا اینجور جواب میده ایشون میگه در بابل ای بل وست و سهه ملحوظ و شرطیه و عدم کونیهی مقرومن مندل مبی یعنی کور بودن جزو مقدماتش نیست نه اینجور مقرومش باشه کمایش هدو بهل ارخو و شرط ما این توضیح عرض کردیم که در جایی که عنوان لصفه یا شرطه خود اون ذات ملحوظ میشه این یک قید خارب یک قید دیگری که بهش اضافه میشه سلمه میگم اینجا مقداری عبارض شیخ خیلی ابحام این سه چار سه شیخ نمیفرم مراد درهیشون چی من که خیلی نفرم لوفرز المراد من عنوان المشاره این مانند شاخه دیگر در شافعی بنظر نظر اعلی عنوان المشارله اینج عنوان بس... نکرا بود. لفظ کون المراد هو صحیح لم یکن اشکارا فی ال العنوان علل اشاره بعد عنوان اگرن برای اشاره مقدم بشه بعد ما فر رحمه الله ان المقصود بالبيع هو اللبن بل جاری علی العقد هو المشو این فردی که کرده باید بگیم عنوان مقدمه لحن نما قصده لهم یقه این لحن نما قصده لهم یقه و موقع علم نخصد اینجا به نظر یک نیم سختی باشه جاش اینجا باید باشه این لحنش ندو کنه مثلا واقعا یستاز بطلان اینجوری مثلا یک چیزی اینجوری باید باشه <تصفح> اینجاش به نظر همسی من... من نشد شروع مکاسب و مفصل ببینم یکی دوستا شر اشاره نکردم به این مسئله به نظرم اینجا سخت داره عبارت شیخ واضح نیست و سختی به نظر نیسته که اصلا چیزی افتاده اینجا زورکی عبارت درست نمیتونی بکنیم بله لعن ما قصدل هم یه از این عبارتی ایشان قیدی بود. واضح نیست و ما و غیر هم و لذا اتفق و على بطلان سر گفتن سر باطل فی ما الى تبین احد ال معیباً من غیر جنس اصلاً طلا رو به طلا فروخت بعد معلوم شد که یکیش معیبه و از غیر جنس خود یعنی فرض کن مثلا طلا رو به طلا فروخته توش مثلا یه مقداری مس داره این رو ادعای اون بحث صرف معامله خاص خودش این اصطلاح ایشون اون مسئله در اینجا آوردن به هر حال این یک مقدار عبارت شکی که خیلی ابهام داره که برای ما هنوز واضح نیست میخواد ظاهرن ظاهرن رد بکنه بر محافظت که شما اون مسئله رو تشیدسانی گفته در مانهنفی نیارین ظاهراً مراد شیخ اینه خلاصش اینه حالا عبارات شیخ خرابی داره جا به جا شده نمی‌فهمم یک اینجا عبارت اصل مطلب واضحه اصل مطلبی که هست مقصود شیخ واضحه عبارت رو خیلی نمی‌فهمم اصل مطلب این است که شما اون بحثی رو که در گفته در ما نحنفی نیاریم چرا؟ دلیلش هم واضحه ایشون رو هم میگه بود اما از طرد دو دفیم مسئله تعارض اشارت برای عنوان البته اونجا عنوان نبود وست بود دقیق میکنید؟ گاهی هم میگن تعارض عنوان و معنون گاهی میگن تعارض صورت ذهنی و صورت خارجی واقع خارجی گاهی میگن تعارض اشاره و وست اشاره چون اشاره خودش طریقیت داره طریقت به خارج عنوان هم طریقیت داره لیکن عنوان افتداعا حاکی از اون صورت ذهنی است اون صورت ذهنی حاکی از خارجه و گاهی این دوتا با هم میگه تا دارن یعنی اون صورت ذهنی یه چیزه واقع که مشارون علیه چیز دیگه است. ایشون میگه اون تردد من جرت اشتباه ماهو المقصود به ذات به حسب دلالت لفظیه اون به اصطلاح نکتش در اونجا اینه که نکشش برمیگرده به دلالت یعنی وقتی گفت من پشت سر این امام جماعت زیده از نماز خوندم آیا از این لحظ ما چی میفهمیم؟ این میخواد پشت سر این امام واقعی نماز بخونه حالا ام یا نه میخواد پشت سر زید نماز بخونه که خب اینجا زید نیست ایشون میگه منشه اون دلالت لحظی است فه اینها مرددتون بینه کون متعلق القص اولا و به ذات قصد اولا و به ذات خوال اینال حاضره این حاضره به اعتبار اینکه که یعنی اشاره مرد از اشاره این حاضره است و یکون اتصافه به عنوان و این این حاضره عنوان مثلا زید داره مبنیه را اله و بین این یک بینم میبود بهتر بود این یک احتمال دو عکس رده اینه. و دین کون متعلقی هو عنوان حالا ماجروش شیخ واظه شیخ رو توضیح بدیم چون با توضیح ما هم هنوز باز مبهمه چون خدا من نفع نداریدم مراد شیخ واضحه میخواد اشکال بکنم جامعه مقاصد اشکالش هم وارده نه اینکه وارد نیست اما این واردش خیلی هم چیز عجیبه غریبه‌ای نمیکنی داشت و کون متعلقی هو العنوان ول اشارات به اعتبار حضور حالا به اعتبار حضور یا به اعتبار این که این ما صدق این عنوانه پس ما یک عنوان داریم یک صورت ذهنی داریم یعنی ما دو تا حاکی داریم یک حاکی به و هازا که این هازا خودش عنوان نداره مندک در واقعه وقتی گذیم حاضل امام یعنی اون واقع یکی هم عنوان ذهنی داریم که عنوان ذهنی هم انتباق حاکی از واقعه فقط در اینجایی به عنوان ذهنی میاد. سوال اینه که اگر گفت پشت سر این امام که زید نماز خونده می این پشت سر این امام که زیده هدفش این بوده پشت سر زید نماز بخونه اون این امام نیست. یا هدفش این بوده پشت سر این امام نماز بکنه خیال کرده این امام زید یعنی این امام صورتی که درسته حال فیصل این آزله اسمش امره آزله هست اما عنوان زید نداره ایشون میگه که اون بحث اینه و اما تقدیر الان تقدیر این به ما هو مقصود و به اما در مسئله قش اینطور نیست چون مقصود و به زاد واضحه گفته مثلا من یک فرنگی گوجوهنگی خوب از این میخورم این گوجوهنگی میخورم نصفش سبزه یا مثلا گفته این گونیش من دارم میگینم از این میخورم به اصطلاح هندزدی بعدا وقتو گونیای هست پلاستیکی درست میکنن که مثلا سیلزینی یا حویش شوش میذارن تا اینکه بغلا اون قش نشه دو تا دور دور سیلزینی دورشته مثلا بنازیری یکی لایه رختاش ریزه همینا چیزاییه که با در پلاستیکی درست میکنن بعد با اسمش یک چیزی با کارتون با مقوا مثل همون یک کمی کوچکتر از اون یک استانه درست کنه این میذاره تو اون گونیه. دوربر این مقووا ها رو دروش می چین. تو وسطش ریز چیزی بعد اون مقووا در میارن. که اول آدم نگاه میکنه، خیال میکنه سیزونی همه دروشن. یه پلاستیکی دیگه دیگه داره. اما دو که بعد میاد وسطش همه ریسن. این مقوای اول میذارن تو وسط اون. دوربری که دروش میشین وسطش یه توش میذاره. بعدم که مقووا رو در میاره. ارزمون که بحث لزوما مرحوم شه میگه در اینجا بحث. تردد نیست اما الان تقدیر العلم به ما و المصود و به ذات ما که مصود به ذات ندونیم مقصود و به ذات شیره و تقدیر مقایرتی للموجود خارجی یعنی مرحوم محقق کرکی اون مثال شیدستانی رو خوب بود در مانه نمی آورد رفتی به مانه نداره کما في مانه نفی تردد و اهدون في البطلان لایه تردید به نظرم مثلا روی قاعده باشه مثلا مرحوم شیخ محمد بگه ولی خود خودش میگه باطل نیست لایه تردده به نظر مراد شیخ اینه که اگر اون قاعده ما وقع الی مخصد و ما قصد لم یقع شما بگیرید لایه تردید به حسب اون قاعده نه اینکه لایه تردید از اسباب خودشه شیخ میگه باطل نیست در هر حال مراد شیخ این است که اگر شما رفتیم به دنبال ما وقع الی مخصد و ما قصد لم یقع این باطل بشه ربطی هم اون مسئله گفت که اصالی حلفه ها در امام علا علا و زید نداره دقلت رفت میکنیم؟ ربطی به اون نداره از شیف برگ باطل نیست یعنی میگه اگر اون قائله یا عبادشه خیلی مجمله یا از من نکن مراجعه کنم یا تو خود ذکران مطلب مفصلتر یه هست تو جامعه واسه مفصلتر و مرحوم شیف نرخیص کردن کلام ایشون نازل به بعض از کلمات دیگر مرمو محقق کرد که باشه یا واقعا ذهن وارشون چی دوره که ما الان خیلی درست نمو درست این تا اینجا پس ایشون تردد در اون مسئله اقتدار تا اشاره اشارانست رو به اون گرفتن و اما وجه و مسئله اقتدار فرزکرا به تا آرز اشارت و وصف کلام عدم اجمال فنیه با این در نیت او اجمالی نیست این م این به اعتبار و عروض اشتباه هست بعد از عمل ایشون اینجور تفسیر میکنن یعنی انسان نمیدونه که آیا من وقتی که نیگرد کردم اینجوری نیگرد کردم پشت سر این امام نماز کندن یا اینجوری نیگرد کردم پشت سر زید نماز کند اشون محنوچه این فرعه اینجوری گرفته این عروض اشتباه بعد از داره اکی ما نماز از کسیران ما یا شبه ها ناوی خیلی وقتا برناوی اشتباه میشه انه هو حضرتی ذهنی الانوان یعنی ذهن و نه لی اقتداء به میخوام پشتر ذهن نمازو که اینه معتقدن لحضوری یه المعتبر امام جماعه معتقدن لحضوره که این حاضره این حضرت این عنوان و نه این حضور و نیت معتبر از در امام جماعه فی اکون الامام و المعنون به ذالک الانوان و این اشا اشار علی معتمدن به حضوره او این یک احتمال او انهو نبا الاختدا بالحاضر و انوانهو بلالک به لإحراز معرفتی بالعداله این پشتر این شخص حاضر مخواست نماز بخونه خیال کرده این حاضرم زید زیده و زیدم پیشش آدل پشتر پشتره او تنبن به مختزل اعتقاد من دون اختیار یا اصلا تعلق نشه به این اول بدون اختیار طبعا مراد باز مرحوم شیخ بدون اختیار نه سبق لسان باشه سبق لسان محل بحث نیست در مواصفه پشتر این امام که امر نماز خون اشتباه گفت زیده این بحث نداره که این نباد بدون اختیار مرادش سبق لسان و اشتباه باشه به هر حال مرحوم شیخ این مثال اقتدارم گفتن این مال جایی که بعد از اینکه انسان نیت کرد شک بکنه نیتش چه بوده؟ خیلی عجیبه من من واقعا خدا نمیدونم شما واقعا چه احتمال خاصی به مرد بزرگواری خیلی عجیبه این مسئله برخوردش به بروز اشتباه قطعاً اینطور طور نیست نه اینکه احتمالاً قطعاً مسئله این طور نیست و قطعاً مسئله همون صداییه که من عرض کردم اصل خیلی مسئله از کتاب اهل سنت هست و در عده‌ای از کتبشون که بونان اشباح و نظاره هستند به بونان طاووسی اشاره خاص دارن و اون اینه که مثلا نه اینکه بعد، نه همون هی نیت بعدم اشتباه که نشودین در همین نیر گفت پشتلی امام که زید، ثقل لسان هم نسا، اشتباه نشید. نه که می‌خاست بگه پشت امام که امره، اشتباه به زبانش گفت. بی‌ثقل لسان که داخل خارجیه. گفت پشت سر این امام که زید نماز نخنه، روزه اشتباه هم بعد نشه. تعجب ازش، گفت اول روزه اشتباه اول بعده. خیلی تعجب کرد. ان شاء الله در کتاب اوره البته در اوره اروز و اورزه که به نحو تعقیید یا غیره تقییدش تفصیل قائله. پشت سر این امام به قیلی این که زیده یا به نحوه دایی باشه تقیید یا دایی اونجا همیشه آلا سآلا اگر محصف قیامت از واسه اجه هم اعتراض کرده, کرده اونجا گفتن در موجود خارجی تقیید مرمان نداره اصلا اونجا خارجی. این خارجی این خارجی قابل تقیید نیست اون خارج واقع خودش تقیید همیشه مفاوم کلی بود این خارجی این تغییرن که سید رحما الله در این جزوره زده به تعید و دایی و به تغییر اصلا اونجا اصلا معنا نداره اون حرف مطلبش اونجا نادرست این مطلبی هم که مرحوم شیخ اینجا توجیه فرمزه این مطلب ایشون هم درست نیست مال روز اشتباه نیست این بحث همینه همین از اول گفت او با پشت سر این امام نماز می این امام که سید نماز می بعد در علامت امره هر دو درست گفته واقعاً صورت ذهنی زید زه را مورد ذی دقت کردی توجیه که کتاب او سعی گذاشتون یک واقع خارجی است به دو نحوی این واقع خارجی رسیده یک نحو مستقیم این اسمش اشاره این کتاب یک نحو به اصطلاح ما غیر مستقل و مسئله محل و اون این که صورت ذهن در ذهن زید در ذهنش حاضر کرده صورت ذهن از صورت ذهن به به این درسته به این واقعه خارجی نه اینکه که عروض اجتماعی ما بحث شد هرچوم از مرمون شد جلالتش انشه از جلست این مطلب بفرمان واضح هستم فرعش و خصوصیاتش بله این فرع رو نباید تو بحث می آورد تو بحث دیگه ایست بحث غشت تا بین بحث و اشاره نیست اونجا نکته نکته تا آرز و اشاره نیست بحث غشت اینه میگه آقا به شیر فروختن واقعا هم قصد شیر کرده اون خارجی که بهش میده اون مشروبه بقیقه تعالی. نه این که تا آرزی بین وصف و اشاره هست هم عنوان روشنه هم مجارون الیه روشنه عنوان شیره در بست نیست هم بایه قصد شیر کرده هم مجتری قصد شیر کرده خارج هم مشروبه تو این نیست بله این که خارج مشروبه مشتری نمیدونه اما باید میدونه تو این هم شکلی. این فرق است با مسئله پشت سریع این امام که روی روان خود در این اشکال این وارده این مرحوم جامعان مقاصد زرامان ما فهم شیخ محاصر چیکار بکنه حال در هر حال ما باشیم مقتصد قاعده اون مطلبی رو که جامعان مقاصد نقل کرده انصافا خیلی به نظر روشن نمیاد. جامعان مقاصد مطلبی رو از اول در باب ساعت جماع نقل کرده اون مطلب رو زن به باب قش نه به باب قش نمیخوره اون مطلب به باب قش نمیخوره این اشکار شیخ وارد روشنگ شد اما اون مطلب خودش چیه؟ اینی که اروز اشتباه بعد شده از کسی را ما خب همچون که کسی را ما خیلی هم این طرفش هم هست میگه مثلا این،, این کتاب که مکاسر فروختن باز دانش کتاب مکاسر نیست اصلا واقعا هم خبر نذاشت و واقعا هم قصد فروشی این کتاب کرد تو خونش کتاب میذاره حالا اینا وا اهل علم نیست گفت این, این کتاب کسی برش ورده بعد گیر کردن کتاب نیست مشوشان فارسی گفتن آقا دی من خودشم اسم این کتاب رو نمی‌شناسم بشه یکی رو گفت کتاب صورت که میگه یعنی هدف این سؤال اینه انسان قصد واقع رو داره دو راه وصول کاش من را چه که نیتونه این حرف روی ایشون فرم نجوه دو راه وصول به این واقع هست یک راه وصول به اصطلاح ما مستقیمه اونجا است. یک راه وصولش یک صورت ذهنی اون صورت ذهنیش کتاب رسائل این مفتاجی به پول بوده، اهل هم نبوده. یکی بهش که میخواد کتاب رساله با این کتاب میخواد، این کتاب باید سؤالی میشه. ترک وقت خود میخواد، بعد باز هم دیگه آرزوال میذن که داره وسوالی شیخ شیخ اوراق میز، تکاس میکنیم. اون آقا اصلا واقعا نیم یعنی رفته پشت سر امام جماعت نه اینکه میدانه این امره گف پشت سر این آقا نماز میخوام با نامی زدید. نه، اصلاً نمیدانه. وارد مسجد شده. میگه تو این مسئله زید نماز میخونه میگه ما فرسین امام جواد که زید نماز خون بعد میگه اون زید نیومده نایبشه فرستاده امر کرده نماز خونه اون مسئله تعارض اش فرسین خود درست تعارض اشاره واس چیه اون یک چیز دیگری است از این است که معروف شیخ فرموده عبد الله سره و بحث سر دلالت لغوی داره دراست نفت کیشون فرموده شای به بحث سر اون مقصود یعنی اونی که ما اعتبار میکنیم مثلا اعتبار مثلا میگه این گونی رو به فروختم مثلا که 50 کیلوز هر کیلوی مثلا سر تومن بر نمید 3 سی کیلوز. یا مثلا این گونی رو که مثلا گندم به فروخت به این قدر بعد معلوم شد که اصلا گندم جمه و هم با جو مناسبه فرسانه قیبت مناسبه است که با جو میخوایم بحث سر این قسمته اونی که ما میگیم علم معتبره اونی که ما میگیم قصد معتبره خوب دفت کنیم. مثلا شما باید قصد بکنیم علم بکنیم به مبیهتون علم داشت رجیم اون علم معتبره اون قصد معتبره آیا در تمام اینها واقع رو لحاظ میکنیم یا چون بشر در زندگی خودش با اون صورت ذهنی تحریک و تحرک داره لحاظ ما با اون صورت ذهنیه؟ اگر واقعه باشی خب واقعا پروخته مالیاتم هم فروخته، پروخته اگر صورت ذهنی باشه اون صورت ذهنی صدقه نمیکنه. این نکتش نکته نقطه دیگریست این مطلبی که براموشیخ فرمودن درست نیست بعد چون مراموشیخ مطلب اون مطلب شیخ هم اگر ناقص بگیم که نمیشه تمامش که کنیم بعد بریم روی اصل مطلب مستقرد برای شد به عمل اگر اجازه بدید نقدش کنم. من خودم عمل باشه. من کنم باشه. اگر میگه موضوعات خارجی خب میزنه صابون داره. مرحوم من گفتم میگه مرحوم سیری هم همینه میگه میگه باشه. خب واقع به یعنی من اگر این به یعنی این رو به قید اینکه نماز بخونه. چون میگه باثره اما اگر دایی باشه درسته. من صدیه از این طور میدر قربه. این شما باید بحثش اونجا لازم. من اشاره کردن. نمیخواد که تاون باید. فرد بخواد نیمه عباده شیخ رسال نیست متعصف آنید. سنه انهو قضی استدال لعل الفساد کمانوس بیل بیل و علال محق علال حضیبیشون هم معاصر هم خیلی خوب نبوده. به ورود نه اناها بل بید. ایشون میگه تا نه خ خکن ها مخشوش منه یا هن ان, ان ای وقتی تم کردنن به همین حدیث حد لا یوا شه اون فییه البته بت معوم اردهبیری از الله و سره این میویه تنیق از ممثل ارجه هست تو این لیوه توسط به جهت لحظی کردند حتا لا یوا نه خورده ببرید چون بناشون بینه که اگر نه خود با عنوان قش موجب جو نمیشه میشه نه قول به میشه این هم بحث اددا گفت نه نهح به ببین نمیشه. اددا تفسی قلا که اجش اینجا نیست اشاره میکن لکه ما یه راه دیگه هم رفتیم اگه یاتون باشه، باشون راه هم لطیفه اون این که اگر در لسان داریم وجود یه شیع برداشته شد دلیل آمد که اینه برداریم این خود این دلیل نازره بینه که به اون درست نیست خود رفتیم نمید نقصی فرنیه قانونی یعنی <تص> به ذهن مرمو معقی اردوی یعنی هر دارو ذکرده یکی لایوباه شیعون پیه غشون یکی قاله القه به نظر ما القهیف بالو اد بلاخش بر نفی ده بهتره چون نفی لندسوف ولزا در بحث مثلا ترس مثلا زهر آمد اگر در بحث طلا گفت در لیوان طلایی آب نخورد در ظرف طلایی غذا نخورد این معناش نیست که به اشتباه چون نه از یک تصرف اما اگر ما گفتم ظرف طلا رو دور بذار خوب دقت کلمه بی هم پیش نایم همه ظرف طلا رو دور بنده اگر گفت ظرف طلا رو دور بنده در بیش هر جا در لسان دلیل نه خودقه کرده تکریف رفت یک عنوان یک تصرف از تصرفات فاتفه این بحث قانونی لطیفی هم هست. در طبان قوانی اینو ملاعات بکنیم اگر رفت یک تصرف این ملازم با بطلان بی نداره اما اگر عنوان رفت روی موضوع مثلا ما در فوحب نقود داشتیم که نجس مثل خون لایجوز و امساق رو. اصلا خون نگه نداری تو خونه ولایجوز و بی اوهو ولایجوز ولا ولا و امساق ولا ب... اگر آمد که اصلا نگه نداری این یعنی بی اش باطلی خب اما اگر آمد لا تشابه دن مثلا خونه نخور، یا مثلا در خون نماز نخون لا تو صلبه این معنیشی نیست که خیلی خونه شد با... دن باطلی نکته فنی. اگر میخواهید از نشان دلیل بطلان بیر، شوشن شد اگر ت... تکلیف آمد روی اعدام موضوع از نظر قانونی، او از نظر اهل، از نظر قانون انسجام قانونی یا تلاون قانونی، ملاءمت قانونی اقتضا بکنه که به احکامش باشه. اما اگر نه وقت یک تصرف خاص، گفت در خون نماز نخون. آمد اون تصرف خاص از و میشه. که حرامه. این سجاح مقاومیش اخترازی میگن که بی ادم نیک این اینه باطل اینه اخترازی میگن پس ما برای مرغوم حق ارده بیگرد افسر ملایوبا اونجا نه خود بده این هم درسته اگر نه به کار حالا به هر گونه باشی یا سبب باشه یا مسبب باشه به نظر ما اختلاط دارد نه اینکه اختلاط ما اصلا از کاری مربه هست نهید در ما املاطیا ابادتی برهم آی و, و دیگران در ملازمات ولی این زم ملازمات نیست ما این چندبار توضیح دادیم این نه دلالت میکنه بر حرمت ملازمه داره با بطلانی ها نداره اینجوری برس کردن ما از کردیم وقتی نه اومد لایوبا هم حرمت رو اثبات میکنه هم بطلان رو اینکه یکی و اول اثبات رو ملازمه ما هر دو مدلور رو مستقیم برای نه میدونیم که توضیحش بزرسه یعنی تکرار بکنن آقایان چون اینجور قائلا میگن نه حرمت میکنه در زجر بل ملازمه بر بطلان بید بل ملازمه ولذا مرموهای خویی بحث نحیل در عبادات و معاملات رو تو بحث ملازمات رو ده. ما به نظر ما اصلا میتونیم ملازمات نیست از همون اول مطلوبش همینه اصلا هم لایوبا هم دست شما رو میگیره که این بی رو انجام نده مثلا مخیلی نه بازار بگیر انجام نده این نه لایوبایی هم میگه اگر بی کردی باسه. بکنی. نیست. یک دو درست یه مطلب نظر ما درست آجایی توضیحش میده دیست از سابقا چند بار توضیح ده دو این علقه هیفل بالوه خیلی دیارتش بوده چون این علقه هیفل بالوه معمیش اعدام موضوعه وقتی در جایی اعدام موضوع آمد خوب دقت بکنی انسجام قانونی اینه انسجام قانونی انسجام قانونی که باید بهش باطل باشه وقتی شارع میادی رو معدوم میکنه مثلا هياکل عبادت رو معدوم میکنه صلیب رو معدوم میکنه بت رو معدوم میکنه خود معنای اعدام بت مثلا مثلا هوبر که خیلی بت بزرگی بود خیلی و طلا بود و هم زر بود یه چیزی بود استاد درس البته وقتی که اون‌ها دست چپش نیست که شکستش رو از کشتی که داده شما مال خود عربا عربا سنت مجسمه سازی نداشت این از خارج اومده اصلا که از بنده که پیاده کرده بود از کشتی این دست چپش میشه که شکایت. خب پیغمبر رفتن این مثلا بوتو و بالا این تلاش ذوق بکنه تلاش بکنه بگه خب به داد دستا هم بوترا سن زیر زمین دف میکردن خود این برنامه شیداست که این بینش اجلارش بود. خود همین کار. خود الغیف البالوئه امر به دفنه یا امر به اعدامه این خودش معنشی که لایق است. این اینم استدلال ما اردبیلی اردبیگی معللا به قوله حتی با از که این شیخ دو بار این حدیث نظره هر دوباره هم متأسفانه غلطه در این که ما دیدیم به شیعه وارد نشده این بچه ثبو اون بچه ثبو میگه است که گاهی اوقات به اصلاح ولو نهی به خود به نخورده به خود عرض نخورده به خود معامل نخورده لیکن گاهی نهی یک که عنوانه میخوره که متحل از خارجه. یا به تعبیر اصولی اینه متأخر ما ترکیبش با اون عمل ترکیب اتحادیه یکیه خود این به قش شد پس روایاتی که در با به حرمت قشه حرمت بیه به را هم میگیره و حرمت با به اصطلاح معنای دیگرش در معاملات و معنای و رفیه نظرم خیلن نحیه انت بیل کنی مستاغن لما حرم نوال قشت داره ما اما اشکال معروف که نحیه به قشت کما تقدر به الامر الان من یعمله خفر و اما نهی و اما به مخصوص مخشوط نسته فرم به این عنوان یعنی عنوانی که شیخ می نیست اما لا یحل آمده لا یحلح آمده اما عنوان لا طبع که نه به خود به خرده باشه نعمد و اما خبر دینار. اما شیخ خیلی من فلو به نظر من انصافم توجه خوبی فرمه به چون واقعا اون خبر دینار مشکل داره همولا به هر حال دینار بوده حالا غیر از اینکه که به اصطلاح دینار در آن زمان آیه برآن داشته لیوزه رو عردین کلی رو کرد مشتقون داشته اصلا دیناری که از سال 73 از اجائب روزگاه بود دینارهای سال 73 اولین دینار اسلامی سال 73 که 72 که هر شد زمان عبدالملیک عبد خود این دینار آیه برآن داره هر سلام وجوده در موضوع ها اولین دینار سال‌های اولی که دینار زرد شد وجود داره چون اکثر دینار زمان رسول الله نبود بیشتر دینار ایرانی یا رومی می‌وردن زمان امیرالمؤمنین هم نبود بعدش تا زمان ازاسجاد توصیف یعنی می‌گن امام باقر اشاره کردن به عبدالملک بن مروار که الان هم من دیدم شکل اون دینارها در عین عکس در بعضی از مجموعه های دینار اسلامی مال سال 733 یا 709 مثلا 733 دیدم اکثرسش هم صلی الله علیه خارجی هم بده بخی مشکلش که آیه قرآن در این دینارها و درهم‌ها ها بعدش هم نخر چون دینار بوده حتی اگه دلار کم داشته ما کج باشه باشه در نظرش طلا بود امر به الغای فل بالوام خب خیلی چون اعدام اول اگر آیه در نظر می که خب مثلا آیه در بالوکه بالو اصطلاح بالو خودیش اون بوده که برای قاضی جمع جرم می‌شه کثافتش رو بالو نمی‌کنه در مقابل به، آمی بودی که ازش میخورده. علایه بعدشم اعدام این مقدار از مال و لذایشون یه فلو اومل به. اگر برفرق قبول بکنی، مثل قضیتان توی واقع مخاب مربون شیخ بگید. من بعد از بحث این چاله توضیح راجبیر را ارض میکنم. بعد از بحث از این کلوات بکنیم، بعد خودمون یک مطلب ارض میکنیم. خرد از یکیلی مسئله تو اما مسئله تر قشن. ایشون شیخ میگ غشت مثل همون گندم بد و گندم خوب خورمای بد و خورمای خوب و آب آم مثل اینه این لعنه و اضافه جبه دینات و دینار خب توجه کرده اینجا اطلافی شده واجب باشه و ایلقا و کان البالوه کار داخلن فی ما و مقصود منها حرامن جز اون مسادیه یعنی عنوان دیگری داره نزیر و آلات الله و قمار و اینها و غذکن که پیمایه با مول اکتصابو به لکوم المقصود من همو حرم علایه اخری این مطلب که دینار چین قشقی داشته که به درجه درسته که اطلاح بشه این یک نقطه خاصیه فیوح ملا دینار عل مغروم من غیر جنس نقده این لیکن اگر از نقدی مثلا از فرص مس مث بوده خب که دینار نیست که خب ترجمه تحجیب مگر میگن یک وقتی یک تلایی بردارم بعضا خیال مث او من غیر خالص من هما یا خالص نبوده لعجل از تلبیس الانناس و معلومون اند مثله او بهی لایقصاده من همه لده تلبیس مگر این فاهوه آلت الفساد لکل من دو فعله و اینه هو من اللبن المنزوج به ما و شرحی علا یعنی البته مرحوم شیخ کلمه زمیر لایوبا رو برگرنوزه به خود دینا حتی لایوبا از دینا بشه مرحوم ارز کلم مرحومی روانی اشرای میکنه حتا لا یوبا متا به شیء ایشون اینجوری نه لا یوبا از دینار وقت کلمه شی مراد دیناره حتا لا یوبا مثلا کتاب چیز فروش نشه به دیناری که فیقه شد مرحوم مامقانی میگه صحیح مرحوم ایروانی میگه صحیحش اینه البته بعضی‌ها هم برمی‌گرده میگه در روایاتی که ما جز عز لا یوبا شیء ال قیمتش هم عبارت شیخ مشکل داره هم عبارت ایشان فالا بعد توضیح میده فالاقواه اینه ازن فل سه حت و بی غیر قسم رابع در این چهارتو نه سن مل عمل و علامات تختزیه القاعده اند تبایی نرقه هست نیمتون بگیم فاصله یا نه فا امکان قد فی اظهار وصفه. مثلا ما خیلی شنگ نشون میشتادن کان فی خیار و تبلیز و امکان من قبیل شب ماه به لبن اون بحث اشاره و وصل بهشون نبود ل عدم کروجی به مض ان مص لدن اگه اینقلا آب ب که شیر بهش افتهشه بگن اگاه فاصل نه شیر و فاصل. ف فا حال و هم معیوم و انکان منقبیل تاب کیر فلونته البته تو را کیر همشون این جورااح دیشان کان لب و حک از طبقض صفه گفت این دومن گندم تو می فروشم بعدی بازکن یک منش. و از اون گندم بود یک منشم خاک بود طب... یعنی مثلا کلی مثلا ده هزار تومن این با مثال منی ده هزار تومن به اندازه یک منکه گندمه درسته اونی که دیگه شواته بود بله و نقص از سمنا به مقدار تراب زائل لنهو غیر متنوله چون مالیت نداره ولو کانشه این متنوله و اگر مالیت داشته باشه بد حلال بیعفی مقابله مثلا درآمد عدسه عدس قیبتش نصف گندمه ایشون میگه به مقدار گندل درسته به مقدار عدس باطله این همون تبعض صفقه هست که دیوزم اشارهی کردیم که خلاف قاعده هست مگر دنیل برش باشه این خلاسه یه کلام مرحوم شیع قدس الله